خدای محمد قسام پنجمی داره جلسات علمی فکری و اصلاحی سال نو دو جلسات با سخانرانی مولانا به هزار فکری اجرام زبط مرکز ویلوم قرآنی سیران مگر مبنای اون نشاست قرآن باشه ن الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن بهی و نتبکل عنه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبمن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبمن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبمن سيئات أعمالنا. ما يخده الله فلا مضلله، وما يضلله فلا هذيله. وشهدوا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسار صدق الله العظیم و سربران گرمی اللہ تعالی این امت رو خیر امم معرفی میکنه و این امت امتی هست که اللہ تعالی او رو معلم بشریات و شده برای تمام بنی نوع بشر قرار داده. این امت امتی هست که عروج او خوبی هایی داره نه تنها برای خودش بلکه برای کل بشریت و افول او زررهایی داره انحطاط او ضررهایی داره نه تنها برای خودش بلکه برای تمام بشریت. از زرر محمد تمام انسانیت متضرر می همانطور که یک معلم کلاس وقتی که از کلاس رانده بشه و اون معلم سر کلاس شرکت نکنه و حاضر نشه تنها خود معلم متضرر نمیشه بلکه کل کلاس او متضرر میشه و هر پرد فرد دانش آموز او گاهی وقتا زرادهای غیر قابل جبران میکنه ما اومتی هستیم که الله تعالی ما رو حامل یک رسالت و حامل یک پیام آسمانی قرار داده اگر ما مسئولیت پذیر باشیم و نقش خودمون رو و مسئولیت خودمون رو در این صحنه هستی بدونیم تمام بشریت نف میبرند و اگر ما از این مسئولیت خودمون شانه خالی کردیم و این مسئولیت رو به نحو احسن انجام ندادیم اون موقع تنها ما ضرر نمی کنیم. بلکه همه انسانها و همه مخلوقات ضرر میکنه. الله تعالی در این امت صلاحیتهایی گذاشته که در هیچ قومی و در هیچ ملتی دیگه این صلاحیت ها وجود نداره در دست ما امت معجزه جاودان رحمت و هست در دست ما یک پیام جاودان و یک معجزه ابدی وجود داره در دستان ما قرآنه اگر ما این قرآن رو هرز جان بکنیم این قرآن رو سرمایه اصلی زندگی خودمون قرار بدیم اون موقع ما میتونیم برای تمام بشریت رحمتی بشیم برای تمام دردهای بشریت با استفاده از این کلام شفا و رحمتی درست بکنیم اما اگر خودمون از این کلام غافل بودیم و این کلام رو هرز جان نگردیم و بر این جامعه عمل نبوشندیم اون موقع در حقیقت خیانتی کردیم نه تنها به خودمون نه تنها به خانواده خودمون بلکه به تمام بشریت ما خیانت کردیم دو سان من الله تعالی دو تا قوت و دوتا نیرو بالقوه در این امت گذاشته کتاب الله و سنت رسول الله در هر دوی اینها قوته ما شاید قوتهای مادی و قوتهای ظاهری و دنیوی رو بارها بار تجربه کرده باشه اما قوتی که الله در کتاب و سنت گذاشته در هیچ چیزی نگذاشته تأثیری که الله در این دو چیز گذاشته در هیچ مخلوقی در هیچ اسبابی این قوت و این طاقت قرار داده نشده این کتاب کتاب انسانسازیه و هر کسی که به این کتاب رو بیاره میتونه تمام اون قله های شامخ انسانی رو و قله های شامخ بشری رو همه اونها رو تصاحب کنه به همه خوبی ها دست پیدا بکنه چی بود که در صدر اسلام یک ملتی رو که در یک نقطه یک کور جغرافی های عالم بودن بینام و نشان بودن کاملا در یک انزوای سیاسی و در یک انزوای اقتصادی و در یک انزوای جهانی به سر می بردن چی بود که این قوم در صحنه حسدی درخشید چی شد که این منطقه رجالخیز شد چی شد که از این منطقه فاتحان بزرگی بلند شد چی شد که این نقطه یک نقطه تقلی و یک محل امیدی برای همه مستزعفیر و ستم دیده های دنیا شد چی شد که این نقطه معادلات سیاسی و معادلات اقتصادی و معادلات فکری همه انسانها رو عوض کرد چی شد که اینجا محل تولید اندیشه شد فکری رو به بشریت منتقل کرد قطعا تنها چیزی که در این محل و این منطقه به وجود آمد همین دو نیرو بود نیروی کتاب الله و نیروی سنت رسول صلی الله علیه وسلم این دو نیرو در کنار هم دیگر مثل دو تا بالند و میتونن افرادی که حتی هیچ کارنامه درخشانی نداشتند هیچ جایگاه اجتماعی کلانی نداشتند اما اگر به جرفا و به عمق این دو چیز فرو برند و این دو تا چیز رو کاملا در وجود خودشون پیاده بکنند اونها میتونن در صحنه هستی خوش بدرخشند و میتونن اظهار موجودیت کنن و میتونن دو مرتبه سکاندار کشتی جامعه بشریت بشن و میتونن پیش قراولانی باشن که جامعه رو به سمت خوبی ها سعادت ها کامرانی ها سوق بدن به شرطی که این دوتا چیز رو محکم بگیرن امروز قوت دلار قوت یورو قوت طلا قوت اسلحه و مهمات همه ما رو مرعوب کرده خوف زده کرده فکر میکنیم اینها قدرت های اصلی این کائناته؟ در سوره دیگه اینها قدرت اصلی نیستن؟ قدرت اصلی این کائنات کتاب الله و سنت رسول الله. الله ذلّا در رابطه با کلام خودش میگه: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرعیته خاشعا متصدعا من خشية الله قدرت کلام الله اینه که این کلام الله کوهرمی تونه ریز ریز کنه. قوتی که در سنت رسول الله سنت رسول صلی الله علیه وسلم هر ناز و عدای مصطفی هر کرشمه چشم مصطفی میتونه تمام معادلات عالم رو عوض کنه نبی ما به سمت ماه با انگشت مبارک اشاره میکنه ببینید حالا چه قوتی گذاشته در یک حرکت و در یک ناز و عدای مصطفی با یک انگشت خودش به ماه اشاره میکنه ماه رو دون نیم میکنه این قوت رو تا بشر حال در هیچ چیزی مشاهده بکنه اما این قوت رو الله تعالی در رفتار نبی ما در اعمال نبی ما این قوت رو گذاشته صحابه کرام الله علی مجمعین موقعی که در جهاد و قضوات شرکت می قبل از این که نگاه کنن شمشیرشون برابره اسلحه و مهماتشون برابره جمعیتشون برابره تجهیزات نظامی برابره موقعیت نظامی و استراتیجی که خوبی اختیار دار دارن یا ندارن قبل از همه اینها اینها به جای خود خوبه وعدو لهم مستطاعت من قوة آمادگی نظامی آمادگی رزمی این چیزی که کلام الله با این مخالف نیست اما قبل از این صحابه کرام الله علی مجمعین نگاه میکردن کردن به ایمان به قوت اعمال آیا کتاب الله آیا سنت حضرت رسول صلی اللہ و سلم با ما هست یا نامه های سیدنا عمر رضی الله تعالی عن موقعی که بر والیان و فرمانداران خودش نامه می مینوشت این نامه رو می بینیم که تو این پیام های سیاسی کم بود تو این تاکتیک های نظامی کم بود تو این از اون حیل و دجلی که معمولا سرلشکران بر ما تحت خودشون مینویسن بسیار کم بود سیاست تو این نامه شاید یک خط یا دو خط بود تاکتیک نظامی شاید تو این نامه یکی بود یا دو تا بود یک توصیه شده بود اما بخش اعظمی از این نامه تأکید بر این بود که بر کتاب الله و بر سنت رسول صلی عليه علیه وسلم عمل بشه همه لشکر دقدقه اول اونها این بود هر لشکری که به هر کجا می فرست اول اول اونها این بود که این لشکر درو فساد نباشه منکر نباشه نافرمانی نباشه خلاف کتاب الله خلاف سنت رسول نباشه چیزی نباشه که ما را از نصرت الله محروم کنه چیزی نباشه که امداد غیبی الله رو از ما بگیره این دقتقه اول اونها بود بعد از اون تاکتیک های نظامی بعد از اون حربه های جنگی بعد از اون سیاست اینها اولویت اول ما نبود اولویت اول ما کتاب و سنت بود این کتاب و سنت دوتا سرمایه بسیار بزرگه به تعبیر علام ندوی که هر زمان این امت صادقان به کتاب الله و سنت رسول صلی علیه و وسلم مراجعه کره دو مرتبه خوش میدرخشه امروز ببینید حرکت و نحضت جماعت تبلیغ به یک آیه قرآن محکم چسبیده کنتم خیر امت اخرجت للناس این آیه رو زیر زربین کرده اون نکات ظریف و دقیق رو از این آیه استنتاج و استخراج کرده این آیه رو عملا دارد تو جامعه ترویج میده به یک آیه کامل عمل کردن توفیق عمل بر کل کتاب و سنت نصیب اونها شده ببینید این تأثیر کلام الله یک گروه مثل علمای دیوبند ما در تسکیه اصلاح و خودسازی به یک آیه بیشتر تکیه کردن یک آیه رو محکم گرفتن یا ای الذین آمنوا و مع الصادقین بین این آیه محکم چسبیدن به شرفای این آیه فرو رفتن عمل این آیه رو تلاش کردن تو زندگی خودشون بیارن این آیه ها تنب... تنها مال تریبون نباشه مال منبر نباشه مال میکروفون نباشه مال مقاله نباشه مال سایت ها نباشه مال پوستر ها و بنر ها نباشه این آیه ها عملی در امت پیاده بشه چکار کنیم این آیه ها نمود عملی در جامعه پیدا کنه ساری و جاری بشه بعد از اینکه اینها این آیات رو ولو یک آیه قرآن رو انسان محکم بگیره محکم بچسبه و همین آیه رو تلاش بکنه در وجود خودش پیاده بکنه الله تعالی به برکت همون یک آیه توفیق دروازه توفیقات بعدی رو او باز میکنه و عمل کردن بر کل دین رو برای او آسان میکنه الله در این کلام یک قوت گذاشته زن من در اول این امت اگر اصر اصل فروقی رقم خورد اگر عصر صدیقی رقم خورد اگر عصر تلایی خلفای راشدین رقم خورد با این کتاب الله و سنت رسول الله رقم خورد اگر عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی به وجود آمد با کتاب و سنت به وجود آمد اگر ما تونستیم سیاستی داشته باشیم که در سطح جهانی بدرخشه سیاستی بود مبتنی بر دیانت سیاستی که گرفته شده از قرآن و سنت بود اگر اقتصاد شکوفایی داشتیم اقتصاد پرونقی پر داشتیم به برکت کتاب و سنت داشتیم اگر ما فاتحان بزرگی داشتیم و قلم روی اسلامی ما روز روز در حال پیشرفت بود به برکت کتاب و سنت بود کتاب و سنت در ما بین ما موج می زاد. و هر زمانی که ما دچار افول شدیم انحطاط شدیم اون زمانی بود که قرآن دست ما گرفته شد شراب تو دستای ما آمد اون زمانی اون زمانی ما دوچال افول شدیم شکست شدیم که قرآن رو به زمین گذاشتیم سیری مبتزل برداشتیم اون زمانی که سنت نبی رو ترک کردیم متگرا شدیم الگو و اصوهی که خدا برای ما معرفی کرده کنار گذاشتیم ستاره فوتبال ستاره سینما بازیگرانی از این طرف و اون طرف الگو و اسوه و مقتدای زندگی ما شد سبک زندگی ما رو دیگه نبی تعیین نکرد معاشره ما رو معامله ما, ما رو اخلاق ما رو دیگه از نبی نگرفتیم اون موقع آمدیم و از رساله یهود و نصارا گرفتیم از آنتن های تلاویف گرفتیم اون موقع بود که ما دچار انحطاط شدیم ما فرو آمدید و پایین رفتیم و دوستان من اگر قرار دو مرتبه اللہ تعالیٰ این امت رو بلند بکنه با هیچ چیزی الله وعده یا نصرت نکرده و با هیچ چیزی این امت دو مرتبه نمیتونه به اون اقتدار و عزبت برسه جز با کتاب الله و سنت رسول الله سلمان اگر اقبال اقبال شد علام ندوی رحمت الله تعالیٰ وقتی شگفتی های اندیشه اقبال رو می نویسه و ویژگی هایی که با اون ویجگی ها اقبال به این جایگاه رسید اونها رو میخواد بیان کنه اولین ویچیکی رو قرآن معرفی میکنه قرآن ارتباط تنگا تنگ یک فرد با قرآن از او اقبال درست میکنه اگر, اگر تحصیل کرده ما از قرآن فاصله گرفت دیگه اقبال دیگه برای امت نمیشه ادبار میشه اگر از قرآن فاصله گرفت دیگه اقبال نمیشه اغفال میشه اون انسان دیگه مسیر زندگی رو از دست میده غم، سوز، درد نکی رو فراموش میکنه. دیگه اون انسان دیدونه در سحنه هستی خود بدرخشه تولید اندیشه کنه و مثل اقبال جهانی رو پر از نور و خوبی بکنه خود اللهم اقبال رحمت الله تعالی و بچگی خودش بیان میکنه پدر من از کنارم رد میشد من من رو در حال تلاوت قرآن میدید اقبال چکار میکنی اقبال چیکار میکنی پدر جان قرآن میخونم پدر فردا دو مرتبه رد میشه اقبال چکار میکنی پدر قران میخونم روز دیگه پدر رد میشه من دارم تلاوت میکنم با سوال تکراری هر روز اقبال چکار میکنی پدر جان تلاوت میکنم آخر میگه یک روزی من از پدر سال کردم پدر جان این همه سال و این همه جواب تکراری من فکر کنم تو چیزی رو میخوای به من بگی. من میخوای می برای من چیزی رو تفهیم بکنی این سال برای چیه؟ این جواب برای چیه؟ میگه پدرم به من گفت. قرآن را توری تلاوت کن گویا الله با تو حرف میزنه گویا گویا الان تو مخاطب اللهی و این قرآن بر تو داره فرود میار وقتی می خونی یا ای الذین آمنو مو بر بدن تو راست بشه تنه تو بلرزه این اللہ منو خطاب کرده ای کسانی که ایمان آوردید بله رب من بله مولای من بله محسن من بله منعم من بله بله بله یا اللہ من آمده آمده در مقابل حلی یا ایوخ الذین آمنو نگاه کن اللہ از تو چی میخواد؟ الله تو رو به سمت چی دعوت میده؟ گویا الله داره با تو حرف میزنه قرآن رو این طور تلاوت کن از اون روز به بعد اللہ اقبال رحمت الله تلالی میگه تلاوت من دیگه رنگی داشت دیگه بویی داشت دیگه قشنگی داشت دیگه لطافتی داشت دیگه حسنی داشت و بعد دری از تدبر در قرآن بروی من باز شد و همین تعلق رابطه تنگا تنگ با قرآن از اقبال یک شخصیت ویژه و یک شخصیت منحصر به فرد درست کرد. امروز تو دبیرستانهای ما، تو راهنمایی ما تو دانشگاه ما قرآن چقدر جا داره؟ متاسفانه امروز یک فردی که کارشراسی ارشد میخونه. گاهی وقتا میبینیم. الله افو کنه روحانی قرآن درست بلد نیست. تجوید درست بلد نیست. و توفیق تدبر در آیات الهی نداره از کلام الله بیگان است از کلام الله بیگان است وقتی ازش میپرسی تو به یک تحصیل کرده و به عنوان یک فردی که قراره یک جامعه رو به سمت خوبی ها سوق بدی از این کلام خوب چه حضی چه بحره نصیبت نصیب تو شده کلام الله مجید رو خوب حفظ نداره حتی میبینی روخانی قرآن خوب نمیخونه چطور میتونه نقش مثبت و مفیدی رو و یک نقش جهانی رو در این بره از زمان برای امت ایفا کنه بازی کنه قطعا نمیتونه همین الله اقبال رحمت الله تلاله پیش نادرخان شهید پادشاه افغانستان وقتی میره اونجا تحفه میخواد برای او ببره حدیه برای او ببره پیشکشی پیش او ببره اللهم اقبال با عنوان یک تحصیل کرده و به عنوان یک فردی که دانشگاه های غرب رو تجربه کرده با کلی مدارک با کلی در حقیقت تحصیلات عالی میخواد با یک سیاستمدار با یک پادشاه مسلمان ملاقات بکنه چی تحفه میبره اونجا قرآن رو میبره گویا گویا اللهم اقبال رحمت الله تلاله داره به تمام سیاستمداران حکام و پادشاهان دنیا یک پیام میده اگر سیاست شما بیماره قرآن شفا اگر میخواید سیاست سالمی مثل فروق اعظم سیاست سالمی مثل صدیق اکبر سیاست سالمی و درخشانی و افتخارات بزرگی در این سیاست ها مثل خلفای راشدین نصیب شما بشه قرآن اگر میخوای حکومت شما بقا پیدا کنه قرآن قرآن رو ارز جان بکنی این کلام رحمت این کلام شفا سیاست بیمار ہے. قرآن شفا اقتصاد ما بیماره قرآن شفا امروز جامعه ما فهمیده که این سیاست با این اقتصاد با نظام ربوی بیماره موسسات بانکی یکی یکی داره ورشکست شکست میکنه و روز به بحران اقتصادی داره به وجود میاد فساد مالی به وجود میاد شکستگی ها داره به وجود میاد امروز تازه اتاق های فکری ایجاد شده چه کار کنیم نظام اقتصادی قرآن رو زنده کنیم کاش فریاد های شنیده میشه از این طرف اون طرف که کاش اون, اون ربا و سود رو حتی درصدهای اندک رو هم چهار درصد و سه درصد رو هم کاش ما اونها رو از اول حرام اعلان می می‌کردیم کاش تلاش می‌کردیم اون نظام اقتصادی که اسلام معرفی کرده قرآن معرفی کرده در جامعه بیاریم هر نظام اقتصادی غیر از اون نظام اقتصادی که قرآن معرفی می‌کنه اون مریضه اون بیمار شفای او قرانه قرآن میگه قرآن میگه ربا یعنی ورشکستگی قرآن یعنی قرآن میگه ربا یعنی ورشکستگی قرآن به سمت معاملات سالم دعوت میده معامله سالم یعنی تبادل مال یعنی چرخه اقتصادی یعنی مبادله مال دست به دست شدن مال یعنی اشتغال یعنی فقر زدایی یعنی در این نقدوستی و زکات خیرخواهی این نظام اقتصادی اسلامه اگر نظام روحی و روانی جامعه ما بیماره خودکشی زیاد شده افسردگی زیاد شده جامعه ما با فقر معنوی روبروه ورشکستگی درونی ایجاد شده کنار سروتها غم کنار ماشینهای آخرین سیستم غم کنار های دوبلاج و چند طبقه غم اگر انسانها اللحاظ روحی و روانی بیمارن قرآن شفا و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه للمؤمنین این شفا این رحمته اگر اقتصاد بیمار قرآن شفا اگر سیاست بیمار قرآن شفا اگر لحاظ روحی و روانی جامعه ما بیمار قرآن شفا اگر اللغاز خانوادگی آمار طلاق بالا رفته بحران ازدواج به وجود آمده قرآن شفا اگر تو این جامعه ما معاشره ناسالمه چی نامده بغض آمده نفرت آمده اگر اگر اگر, اگر فساد در داخل تعاملات مردم به وجود آمده قرآن شفا اگر افراتیگری آمده اگر تندروی آمده اگر خشونت آمده قرآن شفا قرآن قانون داره برای قتل قتل ناحق قرآن برای کشتار نابجا قانون داره من قتل نفسم بغیر نفسن او فسادن فك قتل الناس جميععة قتل یک انسان چه زیبا تو یک جمله کوتاه چقد فساحت چ چقد بلاقت چقدر زیبا ال تعالی یک قانون بسیار بزرگ برای مقابله با افراطیگری برای مب مقابل با, مقابل با صفاکی مقابله با تاتار منشی مقابله با مقابله با کشتار جمعی ال قانون آورد قانون. یک جمله بسیار کوتاه، یک منشوری که یک جملش اگر به او عمل بشه همه صفاکی ها از جامعه امیره قرآن میگه من قتل نفسم بغیر نفسن، او فساد فکعنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکعنما احیا الناس جمیعا این همی اون قانونه اگر یکی کسی رو کشت و تمام بشریت در مقابل این کشته سکوت کردن این کشته مهم نیست مسلمانه اهل زمزم این مستعمنه این غیر مسلمانه این بوداییه اما در یک کشوری دیگه به ناحق کشته شده بدون فساد کشته شده اگر تمام بشریت در مقابل این, این خونی که ریخته شده سکوت کرده قتل یک نفر قتل همه بشریته اگر بشریت در مقابل قتل و کشتار میان مار سکوت کرد این نشانی مرگ سازمان ملله این نشانی مرگ سازمان های صلح جهانی این نشانی مرگ سیاسته این نشانی مرگ اون. ناتوه این نشانی مرگ سازمانهایی که دم از حقوق بشر می زنن. این نشانی مرگیه برای همه بشریت که همه لب پرتگاه حلاکتن و این آتش قتل و فساد افراط و خشونت تمام جوامع رو داره میگیره اسرائیل اگر کشت اگر اطفال رو کشت اگر زنها رو کشت بشریت سکوت کردن افراطیگری رشد میکنه که انما قتل الناس جميعا اگر در میان مار انسان ها کشته شدن سازمان های جهانی سازمان های اسلامی سکوت کردند و قتل الناس جميعا اگر اگر در افغانستان و عراق کسی کشته بشه دیگران سکوت بکنن که کعنما قتل الناس جميعا این قتل بشریت این قتل انسانیته گویا بشریت مرده گوی انسانیت مرده گوی آتش فتنهی داره از این نقطه بلند میشه که دودش به چشم همه میره اون کریملین نشین اون کاخ سفید نشین اون تلاویف نشین همه و همه در معرض خطران اگر در مقابل قتل سکوت شد خون ناحقی ریخته شد واکنشی نبود اکسل عملی نبود کسی در مقابل او قصاص نکرد با فساد مقابله نشد. اما اینکه ما گزینشی دنبال قتلها بریم، اینکه ما گزینشی دنبال ترورها بریم، اینکه ما گزینشی دنبال افراطی‌گری و خشونت بریم، هر جایی که منافع سیاسی ما بود، هر جا که منافع اقتصادی ما بود، هر جا که پالایشگاه نفت بود، هر کجا که ذخایر زیرزمینی بود، نیروی نظامی مشترک تشکیل دادیم و به بهانه مبارزه با تروریسم رفتیم اونجا قشون کشی کردیم. اما در مار کشته میشن بشریت همه سکوت میکنند صدایی از کسی در نمیاد چرا چون اینجا چای نقدی نیست چون اینجا معادن نیست چون اینجا منافع سیاسی و منافع اقتصادی تضمین نمیشه اینجا دیگه فریادهای حقوق بشر توش دلار نیست اینجا دیگه فریادهای دفاع از بشریت توش منافع سیاسی نیست اینجا دیگه دفاع کردن از یک مردم آباره و بیخانه و کاشانه هیچ نفعی برای کرملین نشین ها نداره برای کاخ سفید نشین ها نداره برای تلاویوی ها نداره بنابراین چشم خودمو رو می بندیم میانمار رو نمی بینیم میانمار رو حضم می ولو این که جایزه سلح نوبل تو میانمارم هست این دیگه افتضاح بزرگه این رسوایی بزرگه جایزه صلح نوبل جایزه صلح نوبر تو میانمار مار دست خانوم سوچی و تو همین تو همین کشور داره قتل عام میشه کنار جایزه صلح نوبر فاکنما قتل الناس جميعا ومن احياها فاکنما احيا الناس جميعا اگر از یک خونی پاسداشت شود حرمتی یک خون، حرمتی یک نفس رعایت شد قرآن میگه اون موقع گویا همه بشریت واکسینه شدن در مقابل فساد، تنروی افراد خشونه، تروریسم، همه بشریت همه میتونن صلح و ثبات و امیت رو تجربه کنن وقتی که با قاتل گزینشی مقابله نشه هر کجا در دنیا قتله قاتل محکومه هر کجا در دنیا خشونه خشونت محکومه هر کجا در دنیا خون ناحق ریخته میشه خون ناحق محکومه میخواد شرق باشه میخواد قرب باشه میخواد مسلمان باشه میخواد غیر مسلمان باشه فکعنما احی الناس جميعا اگر میخواید انسانیت حفظ بشه جلوی خون های رو بگیرید این قائد قشنگی برای برون رفت از همه مؤزلات نظامی برای برون رفت از همه معضلات سیاسی به خدای محمد قسام اگر سازمان ملل بیمار قرآن شفا اگر اگر سازمان های حقوق بشر بیمار قرآن شفا اگر کرملین بیمار قرآن شفا تلاویف بیمار قرآن شفا کاخ سفید بیمار قرآن شفا این شفا هست این همون شفاییه که برای کسراها شفا شد برای قیصرها شفا شد برای صفاکیها و خوناشامیها و تاتار منشیها در صدر اسلام این شفا شد شفا و امروز هم اگر میخوایم این شفا رو در سیاست تجربه بکنیم این شفا رو اگر میخواهیم در اقتصاد تجربه بکنیم والله العظیم قسم به خدای محمد قسم هیچ پارلمانی هیچ مجلسی هیچ محفلی هیچ میتینگی هیچ نشستی هیچ حمایشی دردی از ما مسلمان ها دوانه نمیکنه. مگر مبنای اون نشست قرآن باشه مبنای اون همایش و مبنای اون کمپین قرآن باشه و سنت باشه اگر با قرآن و سنت کنار هم جمع شدیم مبنای تشریع ما قانونگزاری ما مبنای مبارزه با ترریس مبنای مبارزه با فساد مالی قرآن باشه و سنت باشه متفکرین جمع بشن روشن فکرها جمع بشن تحصیل کرده ها جمع بشن. علما جن بشن محور قرآن سنت با کنار هم دیگر فکر بکنن از این دو محور اساسی چطور استفاده کنیم ولی قسم همه خشونت ها دنیا میره به غیر از این اگر هر چیزی مبنا باشه بشریت نجات نمیکنه کنه دوسان من اول این امت با قرآن و سنت درست شد آخر این امت محدی میاد آخر این امت عیسی میاد این دو عزیز این دو شخصیت بزرگ اما اینا چی دارن؟ سال. اینا با چی میان؟ اینا با بم بعثا میان؟ اینا با صلهای کشتار جمعی میان؟ نه نه نه نه نه. هم حضرت عیسی علیه السلام، هم حضرت مهدی علیه السلام اگر در آخر الزمان به عنوان منجی بشریت میان، میان که خوبی ها رو برای بشریت هدیه کنن، اون دو بزرگوار هم تو یک دستشون قرآن، تو یک دستشون سنت هست سرمایه اون دو بزرگوار هم در آخر زمان همین دو چیزه و اونها با همین دو چیز انسانیت را از ورتهای حلاکت از لبه های پرتگاه حلاکت نجات میدن ازاد دو سالبان من خوشحالم این جلسه ایمانی و دینی در این سوران در این مجمع قرآنی و در این مجتمع دینی برگزار شده و اساس بر قرآنه اینجا ما جمع نشدیم بر مبنای دیگه بر اساس ای، و چیز دیگه ما رو اینجا جمع نکرده هم اندیشی هم فکریه برای که قرآن در ما بیاد نزد دوستان من همه تلاش کنیم فرهنگی ما، دانشجوی ما، تحصیل کرده ما، عالم ما همه تلاش کنیم تا قرآن در همه ابعاد و شعون زندگی ما نمود عملی پیدا کنه همه تلاش کنیم قرآن دو مرتبه بر سینه بیاد از سطور به صدور بیاد تلاش کنیم نه تنها حروف قرآن بلکه حدود قرآن تو جامعه زنده بشه تلاش کنیم از کلاس درس ما نقمه قرآن بلند بشه از شبهای تار زمستانی ما نقمه قرآن بلند بشه تلاش کنیم از قنجره بچه کوچک ما قرآن از از از از پیر زن ما و پیرمرد ما صدای پنجره از اونها صدای قرآن بلند بشه اقتصاد ما رنگ قرآنی معاشره ما رنگ قرآنی و قرآن رو بتونیم تو این جامعه لمس کنیم مشاهده کنیم الله ما توفیق عمل بده بنده بیشتر از این نتوانی دارم و نه بیشتر از این هم در حقیقت مناسب هست وقتی شما سروران رو بگیرم به همین قد بسنده میکنم الله <سؤال> تعالی <سؤال> به معنی گوینده به شما سروران توفیق عمل بده و